الا 26 ژوئن 2008 سلام عزیز خواستم این بار برایت نامه واقعی بنویسم نه ایمیل و از این چیزها روش قدیمی نامه کلاسیک با جوهر و قلم و کاغذ و پاکت و تبر باید بنویسم و فوری توی صندوق پست بیندازم اگر در فرستادنش تأخیر کنم ممکن است پشیمان بشوم و نامه را پاره کنم پیش می آید با یکی آشنا می شوی. یکی که با آدمهایی که دور و می بینی خیلی فرق دارد همه چیز را طور دیگری می بیند و تو را هم به طرفی سوغ می‌دهد که زاویه دیدت را عوض کنی به تدریج دنیا را از دید او می‌بینی. درونو درون و بیرونت را هم تحت تأثیر قرار می‌گیری. تحت تأثیر قرار گرفتن چیست اسیر جادویش میشوی شوی اوائل فکر می کنی می توانی را حفظ کنی زمام دلت را در دستت نگهداری حالانکه طوفان است آنچه گمان میبردی باد است. زمینی لغزنده و ناپایدار است آنچه گمان میبردی حد و مرز است. یک دفعه می بینی آنکه متوجه شده باشی از ساحل دور شده ای. درست وسط اقیانوس هستی. عزیز نمیدانم کهی به کلمه هاید این اینطور وابسته شدم. تنها چیزی که میدانم این است که نام نگاری های من مرا دگرگون کرده. از همان روز اول شاید پشیمان بشوم از اینکه پیش تو به اینها اعتراف میکنم. شاید حدم را نمی شناسم. اما من که عمری در بند حد و حدود بودم یک بار هم که شده میخواهم از حدودم پا فراتر بگذارم جسارتم خودم را حیرت زده میکند البته اگر بشود اسمش را جسارت گذاشت ابتدا رمانی را که نوشته ای خواندم با کلمه هایت بیدار شدم با کلمه هایت به خواب رفتم. بعد نام نگاری را شروع کردیم و توجهم از نوشته به نویسنده معطوف شد. اگر ایمیلی از تو آمده باشد، روزم را شاد شروع می کنم. اگر نیامده باشد، احساس می کنم چیزی کم دارم. من به گمانم ابتدا عاشق حکایت هایت شدم. وی تخیلت، دلت، حروفی که در درونت داری و سرانجام فهمیدم این هیجان که مدتهاست مزهش را نششیدهم و حتی فکر میکردم فراموشش کردم حوای گذرا نیست. در طول روز انگار که با خودم حرف بزنم با تو حرف میزنم. این را میدانستی، با تو درباره اتفاقات آن روز صحبت می کنم. هر وقت به جایی تازه بروم یا چیز قشنگ و دلنشینی ببینم با خودم می گویم اگر عزیز اینجا بود چه فکری می کرد. می خواهم همه زیبایی ها را با تو قسمت کنم. پسرم دیروز پرسید مادر تو یک فرقی کرده ای؟ ببینم موهایت را کاری کرده ای؟ موهایم مثل همیشه است اما خودم میدانم که با همیشه متفاوت به نظر می رسم. از دوستهایم هم حرفهای مشابهی می شنوم میگویند صورتت برق میزند پیش متخصص پوست رفته ای؟ در صورتی که هیچ کار خاصی نکردم جز فکر کردن به تو اما هر وقت که غرق فکر شوم و به تو فکر کنم یادم می افتد که ما هنوز همدیگر را از نزدیک ندیده ایم. و آن وقت است که به حقیقت میرسم حقیقتی که باید بپذیرم این است تو را بی آن که دیده باشم دوست دارم ملت عشق را تا آخر خواندم گزارشم را تحویل دادم. بله داشتم برای مؤسسه انتشاراتی گزارش ارزشیابی تهیه می کردم. خیلی دلم می خواست نظرهایم را برایت بنویسم. می دستکم دست ای را که همراه گزارش برای مؤسسه انتشاراتی فرستادم نشانت بدهم. اما کار درستی نبود، باز هم باید این را بگویم، از رمانت خوشم آمد، خیلی زیاد. مرا به داخل داستانی کشاندی که ربطی به زندگیم ندارد، اما خواندنش که تمام شد، فهمیدم در اصل همه چیز با همه چیز ربط دارد. به هر حال تصمیم برای نوشتن این نامه ربطی به ملت عشق ندارد. چیزی که به نوشتن سوغم داد، ارتباطی است که بین ما وجود دارد و من نتوانستم اسمی رویش بگذارم. ماجرایی که اوایل به نظرم مکاتبه ای ساده می رسید، از آن چه فکر می کردم جدی تر شده. ابتدا عاشق حکایت شدم که تعریف می کردی. بعد یک دفعه دیدم که دوستت دارم. گفته بودم که این نامه را باید فوری بفرستم وگرنه پارش می کنم و دور می ریزم. الا